داستان های صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان سیسه و مشکلات کوچک روزی روزگاری که بالا هاید فرمانروای ایالتی از کشور هند بود با عصبانیت سیسرو رو که از مشاورانش بود نزد خودش خواست و گفت: تمام مشاورای من مشغول رسیدگی به امور مهم مملکتیان پس تو چرا بیکاری؟ عمر ال حضرت یک هزار سال بود من هم سخت مشغول خدمت به شما هستم. هر دامه که یکی از مشاوران شاه بود و نسبت به سیس حسادت می کرد گفت عمر ال حضرت دو هزار سال باد سیس کاری به امور مهم مملکت نداره برای همینم انگار هیچ کاری انجام نمیده. مشاور دیگه ی شاه گفت. عمر علا حضرت سه هزار سال باد، دیروز من مشغول بازرسی ارتش شما بودم، هردامه خزانه ها رو شمارش و صورت برداری می کرد، آنیدرا مالیات ها رو جمع می کرد و سیسه طبق معمول توی باغ می چرخید و به سخنان پیرزنی فقیر که از مسائل جزئی و بی اهمیت شکایت داشت گوش می کرد. آنیدرا دنباله حرفش را گرفت و گفت عمر علا حضرت هزار سال باد. دو روز پیش هم سیسه وقت خودش رو صرف پیدا کردن والدین کودک گم شده ای کرده بود. شاه که از شدت عصبانیت برافروخته شده بود نگاهی به سیسه کرد و با نعره ای ترسناک گفت سیسه من با تو چه کنم؟ سیسه گفت عمر علا حضرت پنج هزار سال باد هر کاری که دوست دارید بکنید. شاه رو به مشاوران دیگه خودش کرد و ازشون نظر خواست اما اونا که می شاه سیسه رو دوست داره می ترسیدن چیزی بگن یا پیشنهادی بدن که شاه رو ناراحت کنه فقط آنیدرا که مثل روباه حیلگر بود موزیانه گفت عمر علا حضرت شش هزار سال باد بهتر فرصت دیگه‌ای به سیسه بدیم تا بتونه خطاهای خودشا جبران کنه اگه اون این فرصت رو از دست داد اون وقت میتونید، اونو تبعید کنید شاه گفت پیشنهاد خوبیه حالا خودت کاریو بهش واگذار کن مشاور بدجنس در حالی که خودش خودشو پنهون می کرد گفت عمر علا حضرت هفت هزار سال باد سیسه باید راهی پیدا کنه که جنگ ها بدون خونریزی و کشتار تموم بشن شاه گفت یعنی چنین چیزی ممکنه؟ سه مشاور بدجنس یک صدا فریاد زدند بله قربان این کار فقط از دست سیسه برمیاد شاه گفت خیلی خوب سیسه اگه این کارو کردی تو رو صدر اعظم خودم می در غیر این صورت مجبور میشم سر نازنین تو جدا کنم و برای همیشه به اون دنیا تبعیدت کنم چون تو خیلی از رازها و اسرار کاخ منو میدونی سه مشاور بجنس لبخندی از رضایت زدند چون مطمئن بودند که سیسه نمیتونه این مشکل رو حل کنه پس هر سه با صدایی بلند فریاد زدند عمر شاه ما جاودانه باد سیسه گفت عمر علا حضرت جاودانه به علاوه یک روز باد من با اجازه شما به کوهستان میرم و بعد از یه ماه با جواب این معما برمیگردم آنیدرا گفت عمر اعلی حضرت جاودانه به علاوه دو روز باد من ناگهان شاه فریادکشان سخنش رو قطع کرد و گفت دیگه ساکت باشید سیسه به کوهستان رفت یک هفته از این ماجرا گذشت سه مشاور بدرج به شاه گزارش دادند که های ما همه جا مراقب سیسه هستند و دارن چهار چشمی اونو میپان پادشاه با کنجکاوی پرسید او کار میکنه آیا سخت در اندیشه فرو رفته مشاورا گفتند نه آلی جناب زیر درخت نشسته و از آج فیل مجسمه میتراشه شاه سیسه رو خیلی دوست داشت با شنیدن این خبر غمگین شد اما این قول و قراری بود که خودش گذاشته بود و قول شاه رو نمیشد نقص کرد روزها یکی یکی اومدن و رفتن و مهلت سیسه تمام شد و او با تمام مجسمه هایی که از آج فیل تراشیده بود به کاخ برگشت با ادب و متانت صفحه شطرنجی را مقابل حاکم قرار داد و مجسمه را رو روی اون چید قلعه ها، فیل‌های جنگی، از پا و سربازان پیاده، دو شاه و دو وزیر که همچون دو لشکر واقعی روبروی هم سفارایی کرده بودند لشگری از آج فیل سفید و لشگری از عاج فیل که به رنگ سیاه در اومده بود. سیسه گفت فرمان تمام سرزمین ها عمرتان هرچقدر که مایلید دراز باد. این صفحه بازی که اون رو شطرنج می نامند همون چیزیه که شما می خواید. در این بازی پادشاه ها میتونن بدون جنگ و خونریزی با هم مبارزه کنند قوانین این بازی درست مثل قوانین میدان جنگه شاه رهبری جنگ رو به عهده داره مثل صحنه واقعی جنگ نقشه میکشه و افرادش اونو اجرا میکنند هردامه فریاد زد علا حضرت او میخواد ما رو فریب بده شاه متفکرانه گفت دوست دارم با اون بازی کنم سیسه گفت به نظر من بهتره با پادشاه جنوب بازی کنید او بارها ما را تهدید به جنگ کرده شاه گفت آفرین سیسه فکر خوبیه و پیکی رو به جنوب روانه کرد مدت کوتاهی نگذشته بود که دو پادشاه پشت میز شطرنج نشستند اونا چند روز با هم به نبرد پرداختند اما هیچ نتونست به اون دیگری غلبه کنه و بازی مساوی شد شاه جنوب به این واقعیت پی برد که در یه جنگ واقعی نمیتونه کاری از پیش ببره پس جنگ با بالاهایت رو عاقلانه ندونست و فکرش را از سرش بیرون کرد بالاهایت از این موضوع تعجب کرده بود ولی از شدت خوشحالی هم توی پوست خودش نمی گنجید او مشاورانش رو فرا خوند و گفت سیسه به اون اونچه تو اختراع کردی همون چیزیه که من میخواستم. امروز جنگی در گرفت که نه کشته ای داشت و نه مجروحی بعد ادامه داد سیسه تو کار بزرگی کردی و شایسته پاداش بزرگی هستی هرچه میخوای بگو تا برات فراهم کنم دشمنان سیسه به شدت ناراحت بودند اما سیسه خیلی آروم بود او با توازع سری تکنداد و گفت من چیز زیادی نمیخوام فقط کمی برنج به من بدین البته دلم میخواد این برنج رو با اون صفحه شطرنجی که اختراع کردم اندازه بگیرید. بالاهایت با تعجب پرسید. چطوری؟ سیسه در جواب گفت. خیلی ساده است قربان صفحه شطرنج چست و تا خونه داره. یه دونه برنج روی اولین خونه بگذارید. دو دونه روی دومین خونه. چهار دونه روی سومین خونه. و به ترتیب در هر خونه ای دو برابر خونه قبلی برنج بذارید تا هر شست و چهار خونه پر بشه شاه فریاد زد سیسه چطور مردی به دانایی تو که این شطرنج رو اختراع کرده باید چون این پاداش احمقانه ای تقاضا کنه بهتر نبود یه پاداشی طلب می کردی که برای همه عمرت خوشبخت می شدی؟ افسوس این نتیجه همون عمر تلف کردن است و اینکه به جای پرداختن به امور مهم مملکت خودت رو با مشکلات و اختلافات کوچیک یا مشغول می سیسه با سرسختی گفت این تنها چیزیه که من می‌خوام. سیسه دیگه چیزی نگفت فقط لبخندی زد و منتظر موند بعد از مدتی برنچ ها رو آوردن و طبق گفته سیسه عمل کردند. وقتی به خونه بیستومه شطرنج رسیدند، بیش از نیم میلیون دانه لازم داشتند. شاه با ناراحتی به سیسه که لبخند میزد نگاه کرد. کم کم تمام کیسه های موجود در کاخ پر از برنج شد. بعد از مدتی به قدری برنج در تالار قصر روی هم انباشته شده بود که از پنجره ها بیرون میریختند. شاه حراسان شد و پرسید، سیسه؟ برای خونه 64م به چقدر برنج احتیاج هست؟ سیسه گفت: نمیتونم چون این رقمی رو بخونم قربان، فقط میتونم اینو بنویسم. بعد روی دیوار مرمرین کاخ این عدد رو نوشت. 18 کنتیلیون و 446 کادریلیون و 744 بیلیون و هفتصد و نه میلیون و و, و یک هزار و و پانزده دانه شاه که دهانش خشک شده بود و به سختی نفس میکشید گفت در سراسر دنیا این مقدار برنج وجود نداره آخه چطور یه دونه برنج کوچیک به چون این عدد وحشتناکی رسید سیسه با خون خونسردی جواب داد این درست مثل اون مسائل و مشکلات کوچیک و ناچیزه که اگه روی هم انباشته بشن چنان بزرگ میشن که میتونه همچون سیلی خروشان کاخ شاه و مملکت رو با خودش ببره و نابود کنه بالا هایت که تازه فهمیده بود موضوع از چه قراره به آرومی سرشو تکون داد و گفت واقعا که تو مرد لایق و دانایی هستی سیسه حالا میفهمم که چرا بیشتر وقت خودت رو صرف رسیدگی به مشکلات و مسائل کوچیک مردم میکنی. تو نمیخوای که مشکلات کوچیک مردم کشور دردسرهای بزرگی برای من و مملکتم به وجود بیاره. من در مورد تو اشتباه میکردم. باید منو ببخشی. تو ماهی افتخار این کشوری. من هم به وجودت افتخار میکنم. حالا پاداش دیگه‌ای از من بخواه اما تو رو به خدا پاداشی از من بخواه که بتونم بدم چون ثروت و دارایی من نمیتونه جوابگوی خواسته های کوچیک تو باشه سیسه دانا گفت من چیزی نمیخوام فقط اجازه بدید این برنج رو بین مردم فقیر تقسیم کنم شاه دستور داد تا خواسته ی سیسه فوری اجرا بشه بعد به سیسه گفت از این به بعد تو صدر اعظم من هستی از تو میخوام که اجازه ندی مشکلات کوچیک مثل دونه های برنج روی هم انباشته بشن و اونقدر زیاد بشن که به حکومت و سرزمین من آسیب برسوند کانال تلگرامی هزار های افسان داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی مهران دوستیتی نقطه ام ای, م ای, ای دی او ای آی. نشانی وبلاگ ما دی الFA نقط مهران دوستی.بلگفا.com <مازم> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی